بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین صلو الله علیه سیدنا رسول الله و آلیه طیبین طاقرین المعصومین اللہ تلدائمت و آلیه اللهم اللہم افرنا جبه محرمین الحمد للحمن ارز شد که در باره سنن حنیفیه که هست ابراهیم معمول بودن یک روایتی هم از جعفریات بود یه روزی توضیح اجمالی ارز کردن چون این بحث طولانیه و ارز شد که کتاب جعفریات از اوائیلی که وقت داد آمد که اوائیل بردن شهارون بود شهرتی به این هم از ها فیدا نکن اسم دجفتر کتاب جعفریه البته ما که تصور میدیم که این کتاب سکونی باشه یک نکته هم باید در نظر داشته باشه اون که ما اصلا الان مطلع نیستیم که این کتاب سکونی مببب بود یا نبود چون هنوز ما روشن نیست که این کتاب مثلا کتاب خلان کتاب خلان بود اشعقی یاد اینطوره این کتاب جعفری مبببی اصلا اسم کتاب جعفری کتاب صلاحات و تهارت کتاب‌های کتاب اما خود کتاب الصحونی را الان ما علم نداریم نه این طرفش علم داریم نه اون طرف. ما طولیهن کردیم به لحاظ تاریخی اولین باری که در دنیای اسلام کتاب مبوب نشر شد هم مسی مسوب به ذمیر مؤمنی یا مشادیذیشو از سنن و فقها یا به احکام چون اون کتاب هم که مسوب بود به ذمیر یا مسوب بود به حال سهرع یا منصوب بود به یا به اون کتاب هم مبوّده ما قبل از این در اسلام کتاب مبوّد نداریم اولین کتاب مبوّده در اسلام کتاب السلام، کتاب زکای، کتاب السلام این همین کتابیست که منصوب از ومیر موامنی و خود این کتاب سکونی هم همینطوره جهفریات هم همینطوره هم فرقمونه هم مثل همه هم. وقت سکونی اونجوره که سکونی هم جهفران عبی هم, هم علیه کتاب جفره موسف جفره ندی یعنی عبی آقای عبیه ایمان سادر عبیه الواقع یعنی آقای علی یکی از با و اینی که ابن علی که یکی از قلمای بزرگی جفره تعدیی در بین احل سنته خب واقعا هم مرد خود اطلاعی خودیشون مهت رفته و خودیشون ابن العشعت بیده و کتاب جهفریات رو مستقیم از اون نهره کرده در اصطلاح ایشون ایشون همین مبعبب بودن شعه ای <تصفيق> چون این کتاب رو محصوب برمی کردن به ذهن ای بوده که مناسب با زمان امیر موامی نبوده مبعبب باشه کتاب و صلاح کتاب و طعانه اون زمان کتاب هایی تو مبعبب نبوده از اگر کامل ابن عدی دیده باشیم یکی از اشکالات ابن علی اینه که این مبورده این به امام نمیخواد به علیم و مومنی نمیخواد حالا که ماکان و نسخه ای که از این کتاب بین اصحاب ما به وجود آمد همون نسخه نوازیر مرحوم راوندی است صرف از الله ابن علی ابن عبدالله, عبدالله راوندی که بسیار سهر بزرگی اینشون شاگرد شاگر شهرتوسی شاگرد پسر شهرتوسی به حساب و در کتاب نوازرش نسخه نوازر به همون نسخه به حسب تاریخ نسخه یا نسخه سحنته احمد دیباجی که احتمالا اولین نسخه بوده که به بغداد آمده چون سهل به مصر رفته و در مصر با این شخص ملاقات کرده از این گرفته از ابنالعشم این البته خود نوازر خیلی مشهور نشده سرش هم نمیدونم من واقعا لذا مثلا از اجایب کار صاحب وسائل از نقل نمیکنه خیلی عجیبه. اني که صاحبجواهر اشکال میکنه که چرا صاحب ا وسائل از کتاب یاد نقل نمیکنه اشکالش باد س حاج اشارها داره ل من توذیه من ال روشنتر خود یا ظاهرا در اون زمان موجود نبوده زمان صاحب جواهر وسائل این ان کتاب نوازر موجود بوده این ظاهرا در اختیار شان نبوده نهم نمیفهمشو فکر نمیکنم نادر می‌شه فکر نمیکنم دلیل می‌دونم چون مرحوم صاحب وسائل اثر کردم ما ماییشان در خبر اینه هر خبری که در یکی از کتب مشهور وصول حجت ایشان قال به حجیت تعبدی هستند و وسائل چه هو قال به حجیت تعبدی معیار معیار هر خبری که در یکی از کتب مشهور باشه کتب مشهور از خود به مرادشین کتاب هایی که مشهور بود وقت خواهی نخواهی ایشون در عده از خطب اعتماد نکرده من اون ساقه سایه هر سمن در این چاپ جدیدی که از از, از شده توسط مؤسسه آلدن در اونجا در جلد سی از این چاپ جلد سی فکرم سفح های 40 باشه دیشه هم نگاه کنم باید و باید شماره سفحه در تو زهنم نکرد اونجا در که از این توائدی که داره خاتمه که داره میگه که بعدی از خطب لم یه سال لیل اولم که مثلا مال معلق بشه لذا نهر نکرد. خود ایشون هاشیهی داره خودستان وسائل این هاشیه تو چاپ مظهومه رنبانی نیامده این اواخر وسائل رو خدای ربانی چاپ نکنه جلده هیفتر به بعد رو شخص دیگری چاپ کرد خدا همشون توی خاتمه وسایل خاتمه وسائل در اون چاپ مرموم ربانی هاشیه نیستی خوبیه این حاشیه در همین چاپ آلویت آمده به قلم خود سابسایه که ایشون یک لیستی در کتاب کتابهایی که ثابت نیست همهش نیست که برزا توش هست به خورزا توش هست لعال... قوال لعالی توش هست نیدم دایمون اسلام نمیان ده دوازده کتاب بود دوازده کتاب ایشون اسمی برد مثبار شریعه اسمی برد که ثابت نیست. تو اون مجموعه ارزوی کلاقه ارزاله فرمونه بشین تو اون مجموعه اصلا نیست تو اون مجموعه که ایشون اسم بردن اسم نوازیت نیست و یا واقعا احتمال نکردن یا پیش ایشان موجود نبوده چون مرمومه سابجه ها اشکال میکنن نه مجیسی نهارو از این جعفری ها و نه مرمومه سابسال سابسال احتمالا پیشش نبوده احتمال ظاهرش اینه احساس نمی کنه آدم نقطهی در اعتراض داشته اما صاحب ها از نوادر نقوم میکنه بله صاحب ها هار توجه نکرده این نوادر هم جعفریوته این ظاهرن برده اسم جعفریوت نمون بزر نوادر نمون حرف کردن به اسم جعفریات رسما در کوزه های ما ترسط حاجی نوری اینا ها دیگه زیاد شد چون قبل حاجی نوری بعد از خوتش خرساری لساری ها همون این رساله از هند آمد مجموعه بود چند تا نسخه کتگی بود این رساله بود این رساله, رساله دیگه هم بود اینا بود. سلحه بود. سلحه. سلحه ها دیگه مشروع شده یکی رساله سلاه بود کتاب سلاه هست از انه چهارون برداد شده بود اما این نسخهی ای که آمد یک نسخه جا بود توصیف شده بود. خود نسخه توصیف شده هجین توصیف یعنی یکی من نیم خواب توضیح شده از خیلی که. اینطور نیست کتاب خیلی ها محضور باشه حساب بله اون نسبت به خودش کتاب محضوری حساب میشه نسبت به خودش و به ذهن ما سر محضوریتش اونه این مقطه خارسی نداره در حال این محضوری که در اینجا نرد پرمیدن تا که بنده نگاه کردن این از منفردات این کتاب جای دیگه نیامده خدا با هر با این کاری کردن الان تردیر سبود تو اون روایت مسئله و آنون میشه برای قبول که خیلن چون انفراز داره و شواهد دیگری برش موجود نیست قبولش خالیت اشتاد نیست پس در اینجا تا اینجا بحثم راجع به روایاتی بود که راجع به همیفیت بود که در روایات ما آمدود دختا توی یک ای که تقریبا مشهور تر بود و سند هم داره به اصابه هم داره تو تو بعضی مساده دیگه هم آمده بود اعفاونله ها توش نبود اما توی نسخه کتاب علیه ابراهیم بود اعفاالله ها در اونچه آمد من, من اوزه کردم یه احتمال میدم یه اوزه هم برمان کردن که هر این در تیموت احتمالی که من میدردن که شاید این هنفی ده تا، که توش احفالده ها هم هست نقل یهودی قسمت مخلی باشه که توش احفالده ها باشه حالا چون این مسادر راه می کنم برکت و آیم احتمال دیدن این مخلی محطم یهودی باشه چون هست که یهودی ها هم احفالده ها رو عملا انجام می دادن این احتمال که در مخلی که یهود نمکشون سیبراهیم عبال انبیاء هستی یهود یهودان بیشون اعتراف داشتن شاید در اون متنی که توسط یهوده در شده اعفا بوده در, در متون ما نبوده نتیجه نهایی که قبل از اینکه وارد بحث بشیم نتیجه نهایی این میشه که اون نهتا یا دهتا به لغت دیگه توسط از ابراهیم بوده اعفا ها توسط رسول الله بوده این هست کلدن این اصلا یکی از راهایی که در شریعت مقدس ها آمده که اضافه برای اینکه ناظر بودن به کارهای که تصریح کرده‌اند یک یه اضافاتی هم خود که امر داشته مثلا وقتی است برای حج که پیامبران برای حج به جلو دستور داده مشخصه برای حج به جلو خودشون از سفر هشت شرعی خود همین مناسک بود خود کلام خود بره. و ایشون فرمودن که صله حج راهینی در طول زمان من چند دفعه عرض کلم یهود و نصارا حج نمیاند فقط مشکین حج نمیاند من که گلنم خالشوند مشکین هم در طول این زمان آدات شرکالوتشون داخل حج شرک دویدن یکی از اهداف حج خود پیغانبر این بود که اون آدات شرکالوت رو از حج جدا بکنن لبهتشون شرکالوت بودید لبهت که در این کتاب همون فصل سابقه 20 سال لبهت برای جاهلی نمیشه هر عش هر کدوم برقرار تون یه نندری باشه. که مشروعشون لا به لا شریک لک لا شریک هست، هو و معاملات. خب خود این نندریش شکالو دی برای از خود نندریش شکالو بشه که برای دقت فرمودید، اینی که فیضمن یه مقدار اون ما و شریکای ز حق برداشن، باز چیزام اضافه فرمودن. این دو تا حجیم بود. یکیش مواقیط رو اضافه کردن از سیلغانی حدود حرم رو رقم زده بودن ام. از حدود حرم قرار داده بودن که مثلا حدودییه بود و نمیذار کینه بود جهرانه بود حدود حرم رو از تهران قرار پیغمبر اکرم دورتر از مقداری که از تهران قرار داده میقاه قرار داده مثلا جلو قرار داده این مواقعیت مشهور یلملغ زلغلیفه. فقط اختلافی که بین مسلمان ها بود فی ما بعد آیا مال ایرام ما هم پیغمبر داردن یا مسلمان داردن که وادی عقیق باشه این وادی عقیق مسلم میقات احل ایرام هست هنوزن هست لیکن انما کلام داریم ایشان جعل نبری بودن البته پیغمبر ایسان این مراقی ایسان این عمل قبیهی بود در اسلام که پیغمبر ایسان یه مقدار برد سنن در الراهیم اضافه میپرمدن یا اصلاح میکردن اگر در پی زمان فسادی برش پیدا شده بود و اگر ما این رو بگیریم یعنی اینطور رو چند بکنیم ما فقط حدثمون این نیست که از رویت بکنیم هم بکنیم هم بکنیم این نتیجهش این میشه که در این خصال حنیفیه خصوص احفاغ الله ها از حدثه الراهیم نبوده از سیر انگوشت از گرفتن و اینها اینها توسط خود از پیغمبری بوده و حقیقت نقطه ایون که پیغمبر اضافه کردن ایفاالله ها بوده پس این ایفاالله ها که همه ربی این اضافه پیغمبره این در خودش در حنیفیت هست ایفراهیم نبوده که اهل سنت هم به این سنت ما چون فعلا بحثمون هنوز توی مسئله ایفاالله و بحثمون راجع به جهت چیز نیست جهت به اصطلاح خود روایت افعالها مستقلن نیست در این محدوده فعلا هنیفیت و فترت و سنت اونها در روایت غیر این روایتی که خوندیم چند تا روایت ما داریم که منال فتره اون دختای و نقطای هشتا رو دختای پنشتا رو مردتر نیوارده همین روالیای که ده تا آمده یا پنج آمده تو بعضیش هم منشوننه باز رووارد دیگه داریم منسانن مرسلی حول و زوار و فست و زوار اینطور این هم داریم اما احتمال بر جا با هم مشترک کرد انثابت سر اما احتمالا اون عنوان سن مرسلی پیدا از عنوان سبتتحیفی از باشه تو مثلا تاثیر و کثرت استواج جایی شونده واجبه که ما الان با اون نداریم، چیزای احتمالا مثلا اون جزء سنن همه انبیا هم بوده، این یه کاری بوده که تصفه ابراهیم شروع کرده چون مثلا توی خطان کردن. تو اینا ختن هست ختن نکردن تو واژه دیگندی میگه اول من احرفن الوهی صحبا را باشه به نظر من اول من از اسارهو الوانی اونم داریم، غیر و ختنه که اولین شخصی که این کارو انجام داد و لذا این یک بحثی که من بر اشاره میکنم که آیا اون روایاتی که اشارۀ مولوی منسونه اونا رو به این خطر و به این حمیفیت اضافه کنیم انصافاً خیلی روشن نیست حتی یاقات با مجموعه شواهد روشن و صندوقات به اصطلاح احفاله ها خودش بحث مستقلی غیر از بحث فقرت که ما تو آیه و بعد من متعرض میشم اینجا به این مناسبت چون این آمده در میانه کتب احفاله ها یه مقدار روایات احفاله ها که ما نحنیفیته از کتب احفاله سنت به اصلا بررسی میشه خیلی احتفال میکنی این کتاب تنزول امام که نام موشوعی حدیثی جلد شیش تنزول امام از همین چاپشون رو ده جلدی. که خدا و عنوان باب شم کتاب شم کتاب و زینه هست داره در حلق و قص و تقصیر این ستا آرمان اون هست روایات احفا شوارب و یا حفر, حفر شوارب و احفا الله ها رو پیشون به همین مناسبه و بعضی ها به اصطلاح معروف در اصطلاح بانان حنیحیت شده من چون بعد از این یواشاش با برایت اعفا اولدهیه و بحثایی اهل سنت کردن چون خیلی تو این بسال بحثا و افغار مختلفی گفتن من دیدم مناسب هست که اول یک مختصری از آراء و تحولات فکری که اهل سنت آجیب این برایت اعفا می‌گفته بشه بعد ببینید به تحلیل اصلا این روایات صحیحه صحیحشون در مقام به نظر خودشون مثلا کدوم یکی در این کتاب در این کتاب در همین صفحه 648 در حاشیهش مواصدی که نوشته مجمل آراء رو آورده من اراخ اللطیفه برای آشنایی نسبتاً جمع کرده. علاوه کتاب دیگه این نسبتاً در جمع وجورش خوبه. اولاً ایشون اولش یک روایتی از حضرت پیغمبر از فعل پیغمبر کان یقص و یأخذ کوتاه منشاربه کوتاห์ می‌کنه. یأخذنی کوتاه کرده. و قال کان کان خیلی رحمانی فعل بعد ایشون در هاضه حدیث و حسن غریب از خصایص شمس تبریزی تعیین حدیث بعدش میگه حالا این اصطلاحات شما یا حسن یا حدیث غریب است یک بحث خود اهل سنت داره ما فعلا وارد این بحث نمیشیم با نیست قالت تقی یعنی کان رسول الله صلی الله علیه و علیه تبع او ابراهیم علیه الصلاه و السلام کما یمد و انه قول تعالی و عهد صلا ابراهیم ربه بکلمه سعفنا قیل الکلمات الخمس فر رأس و الفرق و قصد شارب و سواق و غیر داره این اقوالله ها توش نداره ما هم ربایات علی ابن راهیم زیل همین آیه بوده قال رسول الله من یه من لم یه خود منشاری فلیسن انا. یعنی من ال لیسن انا آمدین به سنت نادر حالا یواشواش والا این بحث بشین که اصلا راجب سبی با چیکار کار کرد اشم یه لوحازان الحدیثان یذلان علی جواز قصد شارب این معناش اینه که کوتاه بکنن یعنی بحثشون این بوده که آیا شارب یا سویل کلا کیق بزن یا دیدیم از ایشون می‌ازن کیق زدنه یا خیلی کوتاه که نزدیک کیف کیق زدن وقت طرف ناشی حد مایوس و منه و غزهب کثیر منفعلت الست سالی اینجا دیگه اقوان زمینه اقوان ادهی شو بختم باید تراشیده دوشن کن کنن با هم تیر اصلا سنده اونها خیلی و حلقه ای. اصلا هدف اینه. چرا لذاه به قولی احکو یا احکو ونحکو یا ونحکو اینها که از بینش و هیچ چرده هی شده هی یه شکنشو کن تقریبا مضمونه مورد از کوفی نهر سنن و نه کسی را من هم الامن اله حلق وله استعصار خب به قسم هم زنین های یعنی این حدیث با اینکه خیلی مشهور و سرشان هم در بخاری هم و ستاوی دیگر هم هست خودشون اختلاف کردن که اصلا معمش چیه یکی معمش این بود که اصلا باز کلن بیشه کن تیق تیق وزنه و زهر کسی را من هم الى من الحرق والاستعصار اصلا نباید که قیدر و زهر الیه خیلی این خیلی دقیقه بکنیم و غیر از را کندن اقوالشون مالش رو اصطلاح خودشون تغییر اهل مدینه میدونه و اصطلاحا مدینه رو دار و سننه رو سننه میدونه چون خب واقعی اصلا داره وقتی که مالک در مدینه بود هنوز سردندان تابعی بودن یعنی واسدشون با زمان اصلا خیلی زیاد نبود به خلاف کوفه کوفه هم دور بود هم فاصله شروع بود مخصول اهل سنت کوفه رو مدینه تا مدرسه مدرسته رو کوفه میدن اصلا مدرسته تا و این خیلی عجیبه یعنی این تر... تر تر تر من کار به جارب فرقیش و تحبتش هم ندارم ظاهر آیه حدیث که هم اینه همینه زهایش این که از بیخ بزنید این ای چطور مدینه که سنت رسول الله دیده تابعین دیده وکشهای تابعه خیلی عجیب. این میگه نه نواد حلقه درست نیست سال درست نیست کان یه okay. را تعدیب من حلقه اصلا کسی ریشه یه تا آسه بریشه زر اصلا با شلاحی رو از تعدیبی د <تصح> <تصح> الاکه بود که اگر نشیله سونیا از عجیب چون واقعا من خب دارم از عجیب میترسند خب ندیه هرگونه. اگر این تق... دقت میکنم من هدفم فقط خوندن اقوال نیست این توجه داره. مثلا ظاهر عجیب با کوچیکی است این علمی اگر کار بکنی همونی سونا گویند. اما مالک که در مدینه پیغمبر برده، دارالسنه و دارو ال فکر اوینها چیه عجیبیم اگر کسی این کاره کرد، اما شلوغش بودن و کان یرا تغیب من حلقه نه او یه بشه. و راو ابن انبه ابن القاسم آنهاو قال احفا و شارب مسلسون. اذن گفتی کوتاه کردن ویش ترجیح این مسله حساب میشه. اینم لکی چون من آخر در روال سکونی یا بعد جا کریم. تاریخ خسرمات الله آمده چون روایت جعفری‌ها رو نخوندی اون جعفریتی که باز به حرف های علی یکی از روایت مهم در ما نهنجی در مقام در فرمات ایشترایشی داد جعفریات که فقط در همین کتاب و اون که خلق لهیت مسلته ما خودمون داریم خلق راسه مسلته خلق مرعته شعر ما درباره زن داریم که زن اگه موی سرش باشه کنا اینجا بینید از مالک داره احفا و شارعه به هر حرد سبیل ما هم منفردا داریم در همین کتاب جرفت جای دیگر هم نداریم حلق و لحیت مسلسان تا اونجایی که من دیمشم مراجع رو کنم بد میست اونجاهایی که تنزیل و شده این ستات که من دیدم یکی زن بایی سرش رو یکی پیش مالک سبیل و خدا تراشیدن یک که این جعفر یا جای دیگه هم نگیدم ریشتراشی مصدق قالن نبری ایشون شافعی مسلکه و واقعا مرد مرگ است خب زندگیش هم در ایرمان حساس سال عمروش ازداری زندگیش بوشه محفوظ مشروع کارزم خیلی قیصه مرگ ملاییت حقیقتن کتاب های بسیار خوبی داره خیلی نافعه شاید توی مذهب به شافعی مثل اون کم باشه بلا نه نوی مارو ساله اون چیه اون کتاب مارو کشیده بله، بود برای مثلا صالحین فلان سالهایی مهر و سالهای سالهایی نه ملاع نه روز تاریخ مالشش نه شایی مسلم داره نه برای بخوریش نه مسلم داره یکی همی کتابی که شرایط معذب المجمو المجمو اش نهست المجموع داره شرایط مسلم داره این کتاب معروف در چیز داره در در حدیث داره که شرحش تدریب و رابیه. تبریب چیه؟ تبریب تبریب تبری شده دارم کتاب ها هم و مرد مولده نیسته خیلی است. نیسته حقا یقا صاحب نظر حسابش نکن یعنی آرائش و عنوان در رجال و حدیث و قبول و قدم و قبول و عنوان خود جل قرار میدن مرد خیلی یه کتاب نیده چیه صالحین ریاض صالحین چیه خیلی این کتاب شیرین یه کشکول خیلی قشنگ مولا اینه آدم مولا نداشته احادیث متفرقه در ریاض صالحین داشته خیلی هم چاک شده خیلی هم هاچیه داره شروع داره خیلی من این یک خیلی هم یک مدازه من باشه محنو سرستم پلی زیر سرز باید پلی داشته عالمانه خیلی ولی قشنگ متفرقاته خیلی مرد دقیقیه حقا یقال مرد فاضلی المختاری این مطلب نرویه هم تو شهر مسلم آمده دی. من نیادم شهر مسلم توی نمیتونی جمع جور کرده به هم یکی اکتفا کرده تو شهر مسلم داره من نگاه کنم تو شهر مسلم این حرفیشان است. المختار انهو یکوس حتی ید دو طرف و شفه این هم رأی سفرون یعنی آمدن گفتنی این که گفته احفو از بین ببرین یعنی این قسمت سدی که لب در... کنار لب دیگه بشه نه کل سدی اون به, به حیثی که لبه بالا دیده بشه این انهاج یا از بین الوینگردن یا هر این برای اینکه فقط به مقداری که اما نه اینکه تا آخر سدی همون اول سدی جوری تراشیده بشه جوری اهفا بشه که طرف لب دیده بشه ولا یحفیه من اصله حالا این یحفیه هم بنابرای نشوج احفا باب افعال آورده این تو بخش دقیقی هم اعرض می کنم احتمال داده شده حفا هم استعمال شده باشه. چون این لغات متقاربه اینجا خوب به قصرات خفف لحیت هست خفف لحیت هست هفا لحیت ها. و احفا لحیت هست کوتاه کردن یا از بین بردن تراشیدن باشه. ان تو بحث لغویش رو میای نکاش فعلا نمیخوام وارد بحث لغوی بشم تو بحث اعطاء اللهات آمده بحث لغویش هم اونجا ولای یفیه من اصله و اما روایت احمد شاره تمعناها اهف ما خالن شفتین اون مقداری که از لب‌ها بلندتر اون رو ببرید اون رو از بین ببری که در وقتی که مثلا آب میخورید غذا میخوریم استدال سبیل ها توی آب و غذا قرار نگیم یه روایتی هم هست نقل کرده هم چی هم نهارو کرده هست انوز اصلش پیدا نکرده توی کتاب احسنت هم آمده توی کتاب ما هم بعضیش آمده متاخترخه ایمان اشاره با اشاره تشاره <تصفح> اینه اشاره به اول این شاره به آب جستی که با آب بخواد بخوره با شاره به این اینه سبیل به از بعد از صدا شرب و بشارت کردن اون که سوزن ان اشارت به اشارت تشاره اثر نداره این قال ابن الخيان این شاعر در معروف دینم مردم اون را نیست انصافا به نظر از اصالتش مولف شعر از حال نوشته هاش مثل نوشته شاعر تنی توندی نداره اون خیلی خاصیه دیگه مثلا با شیعه که تمام حوزه ضد شیعه ازمه. اولی ابن الغی، ابن بسیار خوبی نوشته انصافا خیلی گذاره در مسئله در کتابخانه معارف دینی اهل سنت مولا هست انصافا مندم مولا است علاوه اینکه در حدیث هم وارد هم وارد خیلی جهات علمی خیلی قدیمی هستند و اما ابو حنیفه ابو حنیفه به اقتدار تشیع اهل سنت به رنک مکتب کوفه است و زفر که شاگردشه و ابو یوسف و حسین بن است قاضی این بعدها قاضی شد. مثلا که کوفه که خیلی با فراست در شهادتش که اولین بار که پیش اهاون برای ناف فالو درده گیان گیری بود. و و, و, و, و محمد این محمد و اینجا محمده من حسن شیوانی شاگرد معروف دیگر ابو حنیف هست این سنفر ارکان فقه حنفی هست یعنی زهر و ابو یوسف و محمد و اما ابو حنیفی که استادشونه و زهر و ابو یوسف و محمد فکان مذهب هم فی شعر ورز و شواره اندل احفا اغضا من تخصیر موی سرم بگتن بتراشید سبیل هم درست اینجوری میشه اعظم و ذکر بعض الموالک یعنی حنفیه از مذهب او که نزد یعنی حنفیه در حلقه شارع اما نوری که از دوران شافیعیت اینطور نقل نمیکنه اینم چند دفعه از من متن میخونم در ذوب عبارتو اینم این, این دعواییه که ما در طول تاریخ داریم این یه مثلا مثل ماویه شیخ طوسی رو این از همون هم دعوایی ساده بعد قالت تحاوی تحاوی هم چند کتاب دارید با فرض و با است و هنفی مثله که آثار حدیثی بسیار خوبی داره و لم اجد انشافعی شیعن منصوصن پیها دار و و الهین رعینا هم المزنی و الهربی شد مزنی باشد کانا یوپیان شواقه به شاگر مثلا اجماع کشی تو ما بگیم شاگر داشت یهفیان شایی سبیه هایشون رو میتراشیدن اما نرمی هم شافی او میگه نه نباید تراشید موسیل از و یا دول اون مالک میگه موسیل از و یا دول رو داره که اخذاه انه هم اخذاه انه, هم انه هم اخذا شافی ورد الاخرم انه لامام احمد که یعنی از مزاری معروف این اصطلاح امام احمد اصطلاحا امام اهل سنه از جماعی اینه احمد ابن همبله این دیگه مثل او هم شد رووارد مراج اهل رو کلات مراج کرد چون همهش اهل روایت داره. خب بر هم خیلی کل اون مرد واقعا زحمت که زار تا۲هزار تا استاد در نه یک میلیون افثر حدیث داشت اینا واقعا زیاد کار کردن فکر می اجماللا نیست مثل شفی نیست حتی مثل مالک هم به نظر من نیست اما با اواب همیف کللا فر داه سافن باید باید باید شریعت رسول به هم بیستید خب این مطلب رو چیز میگه آقایه یه یا پخر رازیس در اون دیگری، دیگه ای. شافی دیگه دیگه ما و هم محبو حنیفه فقله و شاید قله و شریعت قل زهران به هم اصلا <تصفح> <تصفح> من استدلالات احمد رو مستشیدم در نیست اما در حدیث خوب خیلی کار کرده اصلاح نحمد کان یخفی شارده هو احفاع احفا ان شبیه که بی از بی خیلی دادیه کاملا میگه با از بی به نظر این سنیای بوده خیلی بهادم همیتون باشه و سمعتوه یوس ار ان سنت فی اشاره فقال یخفی نه من دار هم من خیلی عجیب ها. با وجود روایت این خیلی عجیب شو بوشه استرا پیدا بکنه اونم بزرگاش و قال ایشونه کثر معلومه که عبداللهه عبدالله بن احمد یعنی مصالحه کثر ایشونه حندل قیل عبدالله اینه عبدالله محمد نعملی استفاده و قال حندل میر لا عبدالله به پدرم احمد بن احمد رجل یک خود شارب و یحیی ان کیفی اخذ قال این احبا فلا برس و ان اخیر ده تراشیدن از تراشید تماما اشتارند کتا هم پرشتارند اینجون هم بعد آل شوکانی شوکانی در اصطلاح خب این کتاب معروفی داره نیبروتان داره حدیث داره تفسیر داره شوکانی در یمن بود دو. مثلا دویست سال برد زادیست پنجا پنجا مرمان و قاضر خوضات بوده زیدی نیست اما مثلا در اداده حسابش زید جوز اهل سنتیه شبکن ولی احفال ایسه که ما زکره هم نروی گفتی لبه بالا دی خود گفتی من هم نمعنا احب و مطاله همه شبکه بلی احفال همه استعصال استعصال نه از ریشه ها و قاموس و کشاف و سایر کزار الله من هستم بحث لغویش برده هستم قال و روای سر قصد لا تنافی اون رااجی میگه پ به تراشین کوتاه کنید نه نقطصد آاشون میگه رووارد قصد, قصد با که بر احف نه انل قصدقدر یک عراجه احب اینطور رساله ها از زمان آ این مسائل این تروییه بار تا از سال دجری منتشر شده است مطعدی قبل از این توضیه مسائل همکساج جگه خداجرری کتاب رسالش این ق منتخب مسائله این رساله ترویج مسائل یکی از آنی که مؤمن بود و فرهیغی هم بود، هم چنداطیش بود. خدا. خدا رحمتش کنه. ایشون علاوه چون هم منتخب مسائل زبان ساده است برای روز ما و ادبیات این کتابی رو در آن آخراش داره تراشیدن یا کوتاه‌کردن با ماشین اگر بر اون گفته بشه تراشیدن. حالا این حرف شوکاریه یا بردیه. بذار تا خودم بفهمم. ایشون نشون داره با اثر خاص گونه وقتی کوتاه‌کردن لا تنافی لأن القصد بد يكون على جهه الاخطاء ما همون ماشینه هم. یه کی داره ماشین میکنه حالا ماشینی که زمان نبوده اصلا نمیدونم ماشین چون یه که و روایت معین اصلا للمراه فشیجره واسه عکس جره واسه پس ما بعد همین بگین بر همون اخفاق و کمال حدیث من رو خود اخذ خودش کوتاه شاره لا یا آرز روات اخفالن نفی زیادتون زیاد هم نظر میکن یا تی الان مصی وده ها چون اون فی های روات احف چون روات عاصل یه کوتاه کردن روات اح نه کوتاه کردن از بیش از ریش کوتاه کردن وافت فرت تا روز کل بجه لکان از رواتتون احفاع ارجه لنه ها پس صحیح راست روات اح در صحیح بخاری هم وارد شد این چند تاره شد تا ها سه تاره و ذهب تبریه علیه تخییر بینل و قرض و همون قاعده که ما داریم چون در بعض قصد شاره بامده اخدش شاره بامده تو همون سنتی رایم قصدش شاره با تو ازش احفا آمده و قول آرون ما حالشی ننمیشیم و قول تا بین مصرکه نیست و مصرکه میمیم باشونم باشونم باشونم لا تا آغازه به همهه در زن نلاقات درلت سعل انه و لا تا آغازه ف نقطز و, و, و با ال احل بندله پای کل و کلاهها ماثابتون خیت رو فیماشاه این نقللا اخوا ها شد ها رو خوب بکن ب چون بر میکن باریشیع روشن و فکر اهل سنت بدونید با این کراوات سنگی گذارن یکی نیست. چهار در مثلا قال به حافظ رو نهجه از دارم را دوش باشه و یورج میخو قول تبریر ثبوتون امره مهنفل احادیث مرکوه مرکو مولوش از رسول الله قول تو ایشون هم میگه که ماذا عبیلی خوب از دوار از کلم تبریر کوچنوز که شم تو و آرائی فرگی هم توی میشه و سال الله و محمد